بسم الله الرحمن الرحيم كتابة تصريف الزنجاني بحث اسم فائل ومفؤول أز ثلاثية مجرد اسم الفاعل والمفعول من الثلاثية المجرد وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثية المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه العوازن فاعل میگه اما اسم فائل و مفعول از سلاسیه مجرد اکثرا اسم فائل بر وزن فائل می آید اسم فاعل بر وزن فائل می مانند ناصر، زارب، قاتل، راهب، عارف بر وزن فائل تقول و ناصر صرفشو آورده خب این اسم همچنان که خودش میگه مثل فیل سرفی نداره مفرد داره مسنا به اضافه جم ناصر یک شخص یاری کننده ناصران مصلا هست تو شخص یاری کننده ناصرون یاری کنندگان البته در این کتاب حالت مجروری منصوبیش رو هم آورده، ناسی هم مسناش رو هم جمعش رو ناصران در حالت رفع در حالت نصب میشه ناصرین ناصرون هم در حالت نصب میشه ناصرین ناصرتون به خاطر این سیغاش بیشتر شده وگرنه یک مفرد در یک مثنا و یک جمع در مذکر و در مثنا هم در مؤنث هم میشن سه صيغه مفرد و مثنا و جمع البته جمع سالم جمع مکسر مثلا ناصرون و ناصرین جمع سالم هستند ولی در مؤنث میبینیم ناصرتون، ناصرتانی یا ناصره تینی در حالت نصب جنب لاصرات که جمع مؤنث هست نواصر هم جمع مکسر است پس اسم فاعل اکثرا بر وزن فاعل میاد مانند ناصر زارب عاطل عارف آلم، عامر عابد ساجد و اکثر ان ییجئ اسم المفعول مله ال وزن مفعول اکثرا اسم مفعولش بر وزن مفعول می آید و ماننده منصورون منصورانی در حالت نسو جر میشه منصورین منصورون هم جمش هست جمم مذکر سالم که در حالت نسو جر میشه منصورین این بود از مذکرش منصور یعنی یک شخص یاری شده منصوران یعنی دو شخص یاری شده منصورین همچنین معنی همین هست فقط الهاز اعرابی فرق دارند منصورون یعنی یاری شده ها منصورتون همین معنی منصور رو داره ولی برای مؤنث به کار میره منصورت منصورتانی منصورتید منصورتان, منصورتان, منصورتان و منصورتن مثنا هستند فقط به خاطر اعراب در حالت رفع الف میگیرد در حالت نصب جریا منفورات جمع محنسش هست مناصر هم جمع مکسرش هست اینا بودند های این ناصر نصر فعل متعدی بود مثالی دیگر از فعل لازم آورده این هم نقطه بسیار مهم نیست در صرف چون در لازم ابتدا باید ما متعدیش کنیم تا اسم مفهول اصلا درست بشه و متعدی کردن شیواه مختلفی دارد اما اگر با حرف جر متعدی شد اون موقع زمیر صرف میشه خود اسم مفول صرف میشه مانند ممرورن بهی ممرورن بهما ما بهم نید شد مذکر ممرورن به ها به ما بهما به ما ممرورن بهن خودش میگه فتو ثنی فتو ثنی و تجمعو و تذکرو و تؤنثو مجهول نست فتثني يعني توب شمار, شمار مخاطب قرار داده بيگه مصنم يكوني وتجمع وجمي بنده وتذكرو ومذكر ميوري وتؤنث ومعنس ميوري ابنيره زمير مفعول به هست فائل انته هست مستتر وجوبا ماله فيل هاي فتثني تجمعو تذكرو وتؤنثو يعني شمار زمین رو جمع می بندی مزکر و مع فی فیما های به حرف الجر در آن فرهای لازمی که با حرف جر متعدی میشان. لا اسم المفعول نه اسم مفعول رو میگه اسم مفعول رو مصناع و جمع او مزکر وماننس نمی کنید بلکه زمین را. تا این شد از فل های لازم ماننج ذذهبه. وخبر رفت فل لازمیه. دیگه نمیشه گفت. مذهب اسم مفول درست کرد مگر اینکه که با حرف جرم متعدیش کرد مذهبون بهی مذهبون بهما مذهبون بهم که مثل ممرور بهما خودش مثال زده بود مذهبون بهی یعنی برده شده مذکر مذهبون بهما یعنی آن دو شخص برده شده دو شخص برده شده مذکر به بهم برده شده ها مذکر. پس تا اینجای کار گفتیم اسم فائل اغلبن غالبن بر وزن فائل می آید و اسم مفعول بر وزن مفعول اما یک نقطه دیگه وفعیلون قدیجی و به معنی الفائل فائل گاهی به معنی فائل می آید یعنی کلماتی که بر وزن فائل معنند شریف یا معنند كريم. إجى مثال زاد الرحيم رو ك الرحيم. إن الرحيم برواد الفائل بمعنى الرحم حس رحم كنده. وبمعنى المفقول، ميج فائل هم بمعنى فائل ميعاد كنده الرحم بمعنى راحن حس، وهم بمعنى مفقول ميعاد. بس فائلون قد يجيوا بمعنى الفائل فائل. به معنی فائل میاد کهرحیم به من رام و به معن و به معی هم میآید کل قطیل به المقتول المقطول مانند قطیل یعنی کشته شده به معنی مقطول هست. پس این شد از بحث اسم فائل و اسم مفول البته از سافی مجرد اسم فیل و مفول از مزب ها انشاالله در درس بعدی بحث خواهد شد. موفق و پیروز باشید